آنا رفت اسماعیل باز هم تنها ماند گربه دوباره به سراغش آمد خودش را به پاهای او میمالید و دمش را به علامت دوستی بلند می‌کرد حسنی گربه را هم نداشت از خانه بیرون آمد خورشید رفته بود باد سردی که از سوی دریاچه میوزید با خود بوی چمن و جلبک می‌آورد گنجشکها جمع شده بودند روی یکی از درختها و برای خوابیدن روی شاخه‌ها جابجا می‌شدند جیغ و ویغشان کر کننده بود ناگهان سکوت کردند جیگ کشان در نیامد انگار که نیستند وجود ندارند در همان حال شاهینی با سرعت از بالای درختها خودش را به جمع آنها زد و یکی را به چنگال گرفت و ردی تیره از خود بر زمینه سربی آسمان غروب بر جای گذاشت و رفت شکار چند بار جیگ جیک کرد و جیغ کشید اما با دور شدن شاهین صدای او هم خاموش شد لحظهای بعد جیک که بلند گنجشک شروع شد. انگار نه شاهینی به خیلی آنها است و نه گنجشکی شکار شده. همه چیز به حالت اول برگشته بود. آفتابه را با آب سطل پر کرد و پای بوته گل سرخ نشست و آستینهایش را بالا زد و وضو گرفت. آب سطر سرد بود. پوستش را میگزید. نگاهش به سوی دریاچه کشیده شد. گبار غروب مثل مهی رقیق لابلای درختها نشسته بود وقتی به در طویله رسید، گردن کشید و با آنا گفت میخوام برم مسجد نماز بخونم، اجازه هست؟ مسجد؟ بله، یکم سب کنی منم حاضر میشم به اتاق رفت، لباس پوشید و به حیاط آمد هوا سردتر و تاریکتر شده بود، دکمه هایش را بست آخرین بقایای کلاغ های سیاه از دشت ها به سوی باغ های بنفش در را آمدند تا شب را روی درخت های بلند به صبح برسانند آنها هم مثل گنجشک‌ها با سر و صدا و قار بلند روی شاخه‌ها می‌نشستند. کلاغ‌ها آخرین پرنده‌هایی بودند که از صحرا برمیگشتند و روی درخت‌ها می شدند. آنها از خانه بیرون آمد و مشغول قفل کردن در راهرو شد. خودش را پوشانده بود. بریم. راه افتادند. کوچه همان کوچه پیچ در پیچ و تنگ صبح بود که در انتهای صفورا را دیده بود و همین طور سلطان را باز هم زنها و دخترهای کوزه به دوش و سطل به دست از چشمه می آمدند و با دیدن آن دو به آنها سلام می دادند و از زیر چشم به او نگاه می کردند. صدای اعزان مغرب از سمت مسجد آمد صدا رسا بود و تا دور دست میرفت. در عین حال حزن خاصی داشت که در آن وقت غروب دل را می لرزند همون طور که صدا هم میلرزید و گاه بادان را با خود می برد اسماعیل پرسید همیشه همین اذان میده اگه باشه اسمش اسرافیله حالا میبینی از من بدتر پیر شده اما هنوز مثل جوونا میپره بالا پشت بام مسجد و اینطور اذان میده گاوچرونا و چوپانا با صدای اسرافید گله رو به ده میارن اسماعیل گفت مثل اینکه صداش از پشت کوه میاد یه جوری میلرزه خیلی وقت به این صدا عادت کردیم به میدان ده رسیدند چند تیغ نور تلایی چراغ زنبوری از قاب پنجره چوبی مسجد به میدان خاکی تابیده بود. سلطان چراغ دوچرخهاش را رو روشن کرده بود آن وسط دور میزد. چند نفر چوب به دست جلو مسجد ایستاده بودند. چند جوان هم که تازه از کار و مزرعه آمده بودند، دستی به سروموی خود کشیده بودند و اطراف آب چشم پرسه میزدند. اده این وضوع گرفته بودند و در حالی که با صدای بلند صلوات میفرستادند به طرف مسجد می‌رفتند. آن دو هم از هم جدا شدند. آن قسمت زنانه شبستان رفت و اسمایل هم قسمت مردانه. اسرافیل از پله های نردبان چوبی بلند که به بام مسجد تکه داشت پایین آمد. بلند و لاغر بود با گردنی کشیده. کلاه مخروطی نکتیزی بر سر داشت و شال سبز خوشرنگی به کمر بسته بود. افتامر را برداشت و به سمت جوانهایی که خیال آمدن به مسجد را نداشتند و حواسشان به چشمه بود رفت و مشغول آب پاشی شد. بریم توی مسجد. میخوام اینجا را آب بپاشم. یکی از آنها گفت: همه جا تموم شده. حالا می‌خوای زیر پای ما را آب بپاشی؟ خب برو اون طرف بپاش. زیاد حرف نزن، میریزم رو سرت. بریم وضو بگیریم، بیاین نمازتون رو بخونیم. اما اسرافیل خیلی سخت نگیر، ما هنوز جوونیم، وقت داریم نماز بخونیم. شما جاهلین تا جوون تو جوونی باید نماز خوند خودت که داری این حرفو میزنی تو جوونی نماز خوندی راستشو بگو اسرافیل صدایش را بلندتر کرد شما جاهله آدم نمیشین برینو طرف تا خیسهتون نکردم جوانها خنده کنان به کناری پریدن تا پراب لوله آفتاب آنها را نگیرد اسرافیل هم خادم مسجد بود هم مؤذنان رفت رو به شبستان، شستشوی استکانها و قوری و سماور آماده کردن چای و همینطور نگهداری اموال مسجد و رسیدگی به کارهای آن به آهدهش بود. همیشه مرتب و پاکیزه میگشت و با همه شوخی داشت. زنها برای بیوه های بنفش در ره حرف در می آوردند که اسرافیل به بعضی نظر دارد. و همین اسباب سر به سر گذاشتن و خنده زنها را فراهم کرده بود. با این حال، همانها سالی یک بار با کمک اسرافیل، فرشها را روی گردده الها به کنار رودخانه میبردند و میشستند. مسجد را آب و جارو میزدند تا رنکه را از گوشه و کنار دیوارهای شبستان می‌گرفتند. شال علمها را میتکانند و شیشهها را پاک میکردند تا شبستان همیشه بوی خوش بدهد و تابستانها خنک باشد و زمستانها گرم. هرچه هوا تاریکتر میشد نور بیشتری از پنجره مسجد به میدان میتابید ادنی به درون شبستان رفته بودند و چند نفر هم بیرون بودند و در حالی که آب بزوی سائد و دستهایشان را می و مسح سر و پا میکشیدند چشم به راه بودند و با هم پشفچ می گردند. اسماعیل اسمایل همانجا بود و بیان که بدانت منتظر کیست مثل دیگران چشم به راه بود که ناگهان یکی از آن چند نفر به قلب تاریکی اشاره کرد و گفت اومد من می بینمش. او هم نگاه کرد. اسب سفیدی که سواری بر پشت آن نشسته بود از صحرا داخل روستا شد صدای برخورد سمحهایش با سنگهای جاده به گوش می رسید کمی بعد اسب و سوار به میدان رسیدند ملایی با امامه و محاسن سفید بر پشت اسب نشسته بود جلو شبستان آمد چند نفر پیش رفتند و افسار اسب را گرفتند ملا آرام پایین آمد و با صدای بلند گفت این دفعه طولانی شد، دفتر رو پیدا نمی نمیدونستن نمی کجا گذاشتن، تا پیدا کنن و از من امضا بگیرن خورشید رفت، از پس شهر تا اینجا یه نفس تاخت اومده عرق به بپایین نجات. با گامه بلند به طرف شبستان رفت و زیر لب سلام ها جواب داد و رفت تو در این میان اسرافیل بیش از همه در جنب و جوش بود سلوات، ملنساری اومد، بلند بفرستین، بعدم نماز، زود. زود دیر ز همانطور که اسرافیل گفته بود صفهای نماز جماعت خیلی زود بسته شد و ملا قامت بست دیگران هم به تبعیت از او با صداهای بلند و کوتاه تکبیر گفتند و قامت بستند و به جماعت ایستادند جز وزوز چراغ زنبوری و گرگر بخاری بخاری‌های هیزومی و طلاوت رسای ملا صدای دیگری در شبستان شنیده نمیشد. اسرافیل مکبر بود گاهی که صدای صحبت جوانهای آن سوی پنجره بالا می‌گرفت برمیگشت و تند نگاهشان میکرد. با این کار به قول خودش ها خاموش میشدند. نماز که تمام شد ملا با یک دست عبایش را جمع و جور کرد و با دست دیگر کناره‌های منبر را گرفت و پله پله از آن بالا رفت و روی آخرین مکان آن که تشکچه بنفش خوشرنگی رویش انداخته بودند نشست عبایش را روی زانو و پاهایش کشید و عمامهاش را از پشت جابجا کرد در این فاصله مردم هم به سرعت جابجا شده بودند به نظر می رسید هر کدام جای مخصوص خود را داشت و سالها همانجا مینش است بعضیها به ستون ها تکه می دادند بعضی به دیوار و جوانترها هم وسط را پر میکردند اسرافیل کلاهش را برداشته بود و به یکی از ستونها تکیه داده بود دیوار تختهای ای کاری شده زنها را از مردها جدا میکرد جای کمتری به آنها اختصاص داشت با این حال صدایشان بیشتر از مردها شنیده می شد. همین اسرافیل و عصبانی کرد از صبح حرف میزنم بازم سیر نمیشن حالا یکم لال بشیم ببینم ملا چی میگه معلوم نشد کی از پشت دیوار تختهی گفت خودت لال بشی که همین کافی بود تا اسرافیل عصبانی بشود ای شیتون، این طرف شیطون نیست همه این حرف رو شنیدند اسرافیل به ملا نگاه کرد و گفت شنیدی چی گفت ملا ملا برای آخرین بار جا به شد و از حزار خواست تا صلوات بفرستند پس از سلوات همه ساکت شدند و چشم به چهرهش دوختند ملا پیشانی فراخ و بلندی داشت با پوستی تیره و محاسنی یک دست زفید نگاهش نافذ و جدی بود و برای همین بنفش در ها پیش او مراقب رفتار و گفتار خود بودند پس از سکوتی که به نظر کمی هم طولانی شد ملا با صدای آهسته این سخنانش را شروع کرد آرام آرام یکی یکی آیات را میخواند و روی کلمات مکس میکرد. و بر مکس ها هم تاکید داشت. هنوز مقدمه را تمام نکرده بود که اسرافیل طاقت نیاورد. کلاه مخروطیش را از سر برداشت و با کف دست چند ضربه محکم به پیشانی زد و با صدای بلند حق حق کرد و گفت ای وای ای وای ای آقا قربونت برم هی همه با تعجب نگاهش کردند. ایماش با چهره ای خسته و بی حوصله صدایش درآمد خدا پدرت رو بیا مرزه بذار ببینیم آخه چی میگه اون وقت گریه کن هنوز هیچی نشده های وای اما اسرافیل همچنان حق حق اینبار این بار پناه از آن آنسر مسجد ملائم تر گفت مشتی اسرافیل یکم گوش بده بعدن اگه لازم شد گریه کن شاید ملا میخواد از شجاعت آقا بلفض بگه اسرافیل کلاهش رو برگردان روی سرش و رو راست نشست و جوابشان را داد آخه آدم این نادون شما که تو این سینه من نیستین نمیدونیم وقتی ملا بالا میره دلم میگیره چه میدونین تو دلمن چی میگذره من یه دست خودم و, آدم و این نفهم چند نفر آهسته خندیدند سگر گرماییش توی هم رفت تکانی خورد و جا به جا شد و دوباره از مردم خواست سلوات بفرستند بعد از آن گفت پیش از اون که به حرفای اصلی برسم لازم دیدم اول علت دیر اومدنمو بگم امروز تو پاسگاه به من گفتن جوری صحبت نکنی مردم شاه رو با یزید یا فر مقایسه بکنن من تو راه همش پیش خودم میگفتم اگه این حرفها رو نزنم پس چه حرفی بزنم؟ قرآن قرائت میکنم، کنم، کلام الهی. حالا میگن هرچی ما میگیم اونو بگو. آدم سرگردون میمونه چیکار کنه؟ مگه میشه قرآنو کنار گذاشته به جای اون لا اله الا الله. ببین کارمون به کجا رسیده قوتاز مردی که گردن لاغر بلندی داشت از گلو حرف میزد، بلند گفت: دور از جناب، دور از جناب. هر کس این حرفو زده خیلی غلط کرده. کلام خدا رو نخونین؟ پ همین که خدمتتون ارس کردم خیلی خوب حالا که نمیشه درباره این دنیا حرف زد بریم سراغ اون دنیا. فکر میکنم با این یکی کاری نداشته باشن سپس شروع به وصف بهشت و اوصاف اهل جنت کرد. اینکه آنجا همه جوان میشوند و باز هم اسرافیل طاقت نیاورد. ملا قربون کلامت یعنی من منم اونجا جوان میشم یعنی و دست به ریش خود کشید. این بار علاوه بر مردها صدای خنده زنها هم شنیده شد. ملا لبخندی زد و گفت: مشتی اسرافیل، اگه اهل بهشت باشی جوون هم میشی، چرا نشی؟ یعنی این ریشم سیاه میشه؟ میشه مشتی، میشه. اسرافیل باز هم تحقیق کرد با صدای بلند. یکی از بنفشه در ها که پشت سر همه و در قسمت کم نور شبستان روی یک پا نشسته بود با صدای تو دماقی گفت: خون خراب. حالا برای چی گریه میکنی؟ چیزی رو که می‌خواستی بهت میدن دیگه من به جایی تو بودم می‌خندیدم اسرافیل به آن طرف گردن کشید و گفت تو بودی شکور عجب آدم نادونی هستی گریه من از خوشحالی بود نه از غم بار دیگر از هزار سلوات گرفت و این بار به اوصاف اهل جهنم و خصوصیات اعلان پرداخت بعد از چند دقیقه حرفهایش را جمع کرد نوبت روزه بود مثل همیشه ذکر مصیبت سکوت کرده بود به اطراف نگاه کرد، انگار دنبال کسی میگشت، نگاهش سرگردان بود، آه بلندی کشید و گفت میخواستم ببینم امشب در خونه چه کسی بریم، به کی متوصل بشیم؟ به اول فضل، اسمایل از دهانش در رفت. احساس کرد گونه هایش گر گرفتند و میسوزند همه با تعجب به این جوان شهری چشم دوختند، اما نگاه ملا به او به گونه دیگر بود، با تحسین و محبت میریم به در خونه باب الهوایج بنی بنیاشم و بعد روزش را شروع کرد. دلهاتون رو ببرین کنار فرات و عشقاتون روی خاک گرم کربلا. اسماعیل سرش را پایین انداخته بود و عشق میریخت. همراه ذکر ملا صدای گریه دیگری هم میشنید. صدای راننده کامیون کامیون درام شب سرد و بیابان خوفناک. مردم گریه میکردند. اسرافیل بلندتر از همه. ملا با چند دعا روزش را تمام کرد و آهسته از منبر پایین آمد. همانجا توشکچهی برایش پهن کردند. رویش نشست و به میز تکیه داد. خسته و نظر می رسید. سفیدها ها نزدیک شدند و پیشش نشستند. اسرافیل با سینی بزرگ چای آمد. اول به ملا تعرف کرد. او کمر یکی از استکانها را گرفت و از سینی برداشت و گفت ها آمشتی اسرافیل خدا انوات تو بیامرزه خیلی خیل دیگران هم یکی یک استقام برداشتند با همون های زمخت که اغلب بر اثر کسرت کار کج شده بود و دستهایی بزرگتر از یک دست عادی داغ داغ خورد کشیدند اسرافیل سینی را جلوی اسمایل هم گرفت بفرما قندم بردار اسمایل قند هم برداشت اسرافیل پرسید صبح اومده بودی بالای تپه آره اومده بودی مثل اینکه دیدمت بله مشتی آمده بودم اسرافیل رفت سراغ دیگران بنفشه ها چند نفر چند نفر دور هم نشسته بودند و چای می‌خوردند و حرف می زدند. اما حلقه اطراف مولا بزرگتر بود آنها هم مشغول بودند در این میان زنی از پشت دیوار تخته‌ای مشبک گفت اسرافیل نه این طرف چای بدی نه اون طرفی ها زودتر بلند شیم برن سفره بندازن الان این طرفی یا میان شام بخورن چند نفر از مردها به این جواب خندیدند مولا نگذاشت ادامه پیدا کند به اسرافیل اشاره کرد تا به آن طرفی ها هم چای بدهد کم کم شبستان خلوت شد صدای گرگر بخاری و فسفس چراغ زنبودی به گوش میرسید. اسماعیل چایاش را که خورد استکانش را برداشت, برداشت برد گوشه شبستان و به اسرافیل داد و برگشت نشست و به یکی از ستونها تکیه داد چشم دوخت به منبر چوبی و مهراب ساده و قوس و هلالان ملا هم بلند شد و با اطرافیان خداحافظی کرد و به طرف در شبستان راه افتاد سر راهش بود به احترامش از جا بلند شد یک لحظه به یکدیگر چشم دوختند اسماعیل دلش لرزید در آن قربت قروب روستایی دور افتاده انگار آشنایی یافته بود دو دستش را پیش برد و دست ملا را گرفت و به گرمی فشرد ملا پرسید مهمون اومدین بله آقا. زود تشریف میبرین معلوم نیست تا خدا چی بخواد؟ مولا لبخند ملایه میزد خداحافظی کرد و رفت اسماعیل برگشت و از پشت نگاهش کرد انگار ملا چیزی از وجودش کنده بود و با خود میبرد افسوس خورد که چرا او را در آغوش نگرفت و مسافه نکرد کفشش را پوشید و از مسجد بیرون آمد آخرین نفر اسرافیل بود که بخاری و زنبوری ها را خاموش کرد نگاهی به گوشه و کنار انداخت خیالش که راحت شد در شبستان را بست چفت آن را انداخت قفلی هم بر حلقه و زلفی آن زد و به طرف خانهاش راه افتاد اسمایلی ساده بود زیر سقف ایوان مسجد و به میدان نگاه میکرد مغازه اسحاق بسته بود و دیگر نوری از آن به میدان نمیتابید تنها شرشر چشمه بود که یک نواخت و یک نفس میریخت داخل حوز کوچک سنگی و صدایش میپیچید توی میدان آن نورده پشت آخرین خانه های بنفش در ره و در پس درخ های بید و سنوبر و مزارع یونجه و شب در صدای قررش گنگ رود می آمد که در تاریکی شب با شتاب به سوی دریاچه پیش میرفت چند دقیقه بعد اسمایل هم به طرف خانه را افتاد هنوز به وسط میدان نرسیده بود که صدایی از طرف خانه سرخان شنید دو نفر با هم حرف میزدند خودش را به پای دیوار رساند رفت. نزدیک خانه سرخان یک جیپ نظامی پار شده بود حدصد که باید ماشین رئیس پاسگاه باشد که به خانه سرخان آمده یاد سنا افتاد: آن نیزار درهم و بلند و چهره نگران او که با شتاب به طرف دریاچه میرفت نزدیک شده از پشت شکاف برزنت اتاقه که جیب به داخل آن نگاه کرد. کسی نبود. آن را دور زد. نور زرد کمرمقی از روزنه طبقه دوم خانه به بیرون می‌تابید. صدای سرخان را شناخت. با زمین مله انصاری چشمش را و دهانشو باز کرده و هرچی چی خواسته گفته. کی؟ سر شب امنیت بنفشه درا رو به هم ریخته. صداها خمار بودند و رها. فردا که پاش برزه به پاسگاه می‌دونم باهاش چیکار کنم. راسی سرخان حواست با من هست؟ هست رئیس اما این ملا انصاری عجب عصفی داره چشمم بدجوری گرفته بعضی از این بنفشه در میگن اسب ملا اسب عادی نیست یعنی چی که اسب عادی نیست؟ نمیدونم میگن دیگه حالا اگه چشمتو گرفته وقتی اومد شهر از چنگش در بیار. خودم هم این فکر رو کردم اما نمیدونم چه سری تو چشمای این ملاست که وقتی نگاه میکنم میترسم. البته کم می اما نمیتونم از اسب دل بکنم تا حالا مثلشو تو این هفتاد پارچه آبادی ندیدم دلم میخواد لباس فرم بپوشم سوارش بشم خودمو برسونم به در رو بیام اینجا پس چی شد این سونا کجا موند سرخان در پی او داد زد کجا موندی دختر سفور رو بگو سونا بازم چای بیاره بعد صدای خشدار ضبط صد بلند شد خاننده ای آواز میخوند و با عجله پشت سر هم میگفت جمیله جمیله سرخان پرسید رئیس vazı مملکت چی میشه؟ زمون پیشوری چی شد که حالا بخواد چی بشه؟ شامیخش و حسابی تو این مملکت کوبیده. هیچ کس نمیتونه درش بیاره. من عاشق توی این های رادیویی میچرخم و گوش میدم. سر و صدا خیلی زیاده. گوشت به این سر و صدا ها نباشه. آمریکا مثل شیر پشت سر شاهنشاه وایساده. مملکت پر از تانک و توپ و تیاره است. ول کن این حرفا رو. حالا به من بگو ببینم دو دو تا چند تا میشه؟ چهار تا همیشه زیر کاسه چی است؟ نیم کاسه. مرحبا به تو کت خود و سرخان. پس چی شد این سونا؟ سرخان این بار بلندتر داد کشید. آهای سونا کجا موندی؟ صفورا یه کاری نکنین دهنم باز بشه و پدر و مادرتو یکی کنم ها. ببینین کجا رفته بگو چای بیاره. صدای لرزان صفورا شنیده شد. نمیدونم ذلیل شده کجاست. خودم میریزم میارم. صدای برخورد استکان نلبکی و خواننده و سرخان که فوش‌های رقیق می‌داد شنیده می‌شد. چند دقیقه بعد صدایی نیومد نگران شد بیرون بیایند و او را ببینند. از پای پنجره فاصله گرفت. هنوز پشت ماشین نپیچیده بود که شبه زنی را در حال دور شدن دید. حدس که باید سونا باشد. صدای حس, حس نیزار در گوشش پیچید و نگاه نگران او را دید که به طرف دریاچه می‌دوید. دنبالش رفت. تاریک بود. چشم چشم را نمیدید در پیچ کوچه با یکی رخ به شد. بلند بود بوی تند توتون و چرب و چرک می داد را شناخت نیمتنهش را روی دوش انداخته و کلاهش را نکه سر گذاشته بود با چشمهای ریز و فرو ای در گودی حدقه نگاهش کرد و لبخند زد سینه به سینه اسمایل ایستاد و زل زد توی چشمهایش اسمایل راهش را کچ کرد تا برود اما هر بار صد به راهش می شد و با صدای خروسکیش چیزی می گفت که معلوم نبود چه می گوید. گاهی صدایش آنقدر نازک میشد که به نظر می رسید زوزه می کشد. بعد صدایش میرفت و بالا نمی آمد قرهکشی دستهایش را بالا و پایین تاب میداد و دهانش را باز و بسته میکرد و کوچه را صد میکرد اسماعیل دستش را گذاشت روی سینه ی او و هلش داد عقب قرهکشی مثل مترسک از جا کنده شد و با پشت زمین خورد و نیم اش افتاد پیش از آنکه بتواند بلند شود از کنارش گذشت و دوید